ايتونس رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام والتهية والاکرام على اشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد الامجد والرسول المسدد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين باب القاسم المصطفى محمد مثل الله و ملائکتهی علا ابن امهی و وسیهی و آیت الله الكبرى النبع العظیم النجم الثاغ بسد الله القالب قالب لكل قالب و مطلوب طالب نقطة داهرت المطالب مظهر الأجائب و مظهر القرائب امام المشارغ بالمغارب الذي حبه فرزن الحاضر والقائب مولانا و مولا الکونین و امیر المؤمنين علي ابن ابي طالب و الا عين الرسول حجت الله على و لیت الله الأثما اسمت الله الكبراء، ومصادات النجبا النقباء فاطمه الزهراء و على سبط الاكبار ابو محمد حسن ابن علي المشتبا المشتبه و على ساكن كربلا ذبيحا بالغفاء منتهرجا يا حسين ابن علي سيد الشهداء و على علي ابن الحسين دین العابدين و محمد بن علی الباغر و جعفر بن محمد الصادق و موسى بن جعفر الكاظم و علي بن مفرد المرتضا و محمد بن علي الجواد و علي بن محمد الهادي والحسن ابن بن علی الاسیلی و الله على حجت الله و الله و اللعن الدائم على اعداء همسی مل اول و الثانی و الثالف و خامسا و الله ابن زياد و ابن مرجانه و عمر ابن شعدن و شمرا و آل عبی سوفیان و آل زیادن و آل مربان الى يوم القیامه جات سلامتی و در فرج موفور و سرور حضرت بقية الله العظم سلباتی ختم فرموید سبوم صلوات رو جهت شادگی ارواح طیبه شهدا مخصوصا شهدای کربلا اموات و گذشتهگان شیعه یانموحبین امیرالمومنین اموات و, امیر و گذشتهگان خودتون پدربنده حکیم خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد سبوم صلوات رو جهت شادگی قلب نازنین بی بی ما شہزاده حضرت رقیه بنت الحسین صلوات الله علیها خط بفرمایید. صلی الله محمد و صحبت راجع به خطبه متقین یا خطبه حمام از لسان مبارک حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود. چند وقتی هستش که خب فاصله افتاد بین بحث ما خب به خاطر بحث ماه مبارک رمضان و سنجلسه یه هم که توفیق حضور نداشتم خدمت شما یک دوره خیلی کوتاهی از ابتدا خطبه عرض میکنم خدمتتون بعد ادامه خطبه رو میگیم که چطور شد عرض کردیم شخصی به اسم حمام که از اصحاب امیر که فرد آبدی بود بعد گفتیم آبد یعنی چی تبد یعنی چی اومد خدمت امیر که یا امیر المومنین سفلی المتقین این اهل تقوا رو من شهر بده طوری که من اینا رو ببینم ابتداان حضرت تفره رفت از جواب دادن بعد اصرار کرد حضرت یه جمله فرمود که یا همم تقل لاوه احسن کتا شهر دادیم که این یعنی چی همم راضی نشد گفت آقا بیشتر شهر بده رسید با اونجا که ارز کرد حضرت میخواد حالا شروع کنه حضرت به فرما صحبتها رو میخواد مقدمه بچینه خداوند فرماد که خداوند فقسم بینهم هم هم خدا معیشت رو بین بنده هاش تقسیم کرده عرض کردیم یه مقداری راجع به ذات رزق که رزق یک بحث ظاهر دارد و یک بحث باطن ما باید این رزقمون رو زیاد کنیم آدم آقل می رو رزقش رو زیاد پکنه دیگه حالا جسم اگه محدود نیست رزقش محدوده اما روح که محدود نیست نامحدوده. پس رزقش هم نامحدوده. عرض کردیم که بعضی از عوامل افضایش روزی رو یکیش گفتیم چی بود؟ کسی یادش میاد آم؟ باریکلا به این حواسا باریکلا وضوح باریکلا سلوات به فرسد براش لام سلالا محمد و حضرت می که شیگه می خواهد رزقش زیاد بشه دوام در تهارت داشته باشه نه یه وضوع دوام در تهارت همیشه وضوع داشته باشه بعد تازه گفتیم تهارت حالا تهارت وضو اولیش بود اومدیم گفتیم تهارت چه های گسترده‌ای داره دوم علت تهاره این تهارت رو دوام داشته باش حالا هرچی این مقام تهارت بره بالا رزق میره بالاتر ولی خب اقلش همین وضوعه دائمال تقارب باشه دائمال وضوع باشه بعضی هم میگن سخته اما آموسینی سخت نیست. آره گفتیم دیگه یادتونه اون روزی که جم یه مقدار آی چه رو چند وقت پیش اینجا خیلی خصوصی بود یعنی همه نوجبون ها بودن از بزرگترها که میشه گفت اغیار این نوجوانا بودن به شکلی خارج بود. ما دیدیم همه بچه ها نوجوان هستن. این چه خودمونی صحبت کردیم. گفتیم رفاقا چهل روز اگر شما یه هی به نفستون بزنید چهل روز این کار رو تمرین کنید بعد چهل روز براتون سهل و یسیر میشه. آسوم میشه. هر کاری اینجوری عادت میکنید. اگه 40 روز اول نشد 40 روز دوم بلاخره عادت میکنی آ یارانم سنش مثلا 40 50 سالشه 60 سالشه داری الحمدلله ریش سفید تو مجلس. دیگه از بچگی صبح بیدار شده تا 6 صبح بیدار شده میرفته مدرسه بعد رفته سر کار, کار من بوده سی سال الان 6 صبح بیدار میشه آن نمیتونم بخوابم عادت کردید. تهارت همینجوری عادت میکنی. وقت الوضوع و نوران. وقتی وضوع میگیری یه نوری تو وجودت ایجاد میشه. من این رو شهر دادم. نمیخوام دوباره شهر بدم تکراری بشه. پس یکیش گفتیم تهارت بود. یکیش گفتیم چی بود؟ یادش کسی؟ سلوات گیرش میاده بگم اینم که یادشه؟ نه رو توی اون مطال قبلی نبود. حالا ها جلوتر داشته بس. نه. آن یکی روایت می‌سازید چرا برای خودتون یکیش اطعام دادن بود گفتم آقا کسی که اطعام میده رزق به زود میرسه پیغمبر میفهمد به کسی رزق زودتر از اون چاقوی تیوی که میره تو کهانه شطورکانه چطور چربیه دیگه چاقو راحت تو چربی فرو میره رزق از اون چاغوه زودتر میرسه به کسی که اطعام میده بعد اومدیم می گفتم اتام دادن یعنی چی اطعامو شهر دادیم. اطعام ما حسن میداد به فقرا اطعام میداد نه به چهار تا شیکم سیرتر از خودش بگردید ببینید وزیر کجاست سفیر کجاست وکیل کجاست بگید بیاد میخوایم سفره اطعام بندازیم حالا همینش مثلا خونه اش کوبیده می خورده میخواد بیاد خونه تو چنجه بخوره فرق نکرد اطعام یعنی اینکه واقعا به فقیر اطعام کنی سلام و گفتیم سه و میشم من فکر میکنم اینجا هم گفتیم صدقه هم گفتیم گفتیم که اگه میخوایی نازل کنی استنزل و رزقه به صدقه نازل کنی از آسمون برای خودت رزق و صدقه بده شهر هم دادی دیدم قاعده متفاوته با قاعده ما دنیایی است دستتو محکم میکن چجابه یه قرون ندیگه بعد مثلا میگه خب بلاخره حالا یه مقدارم ما مقدسیم دیگه بلاخر نمازی میخونیم حیطی میریم صدقه هم بدیم دست میکنه تو جیبش اتکناسوارو میزنه کناه میره اون ته ببینه سکمه که چیدی گیر میاره میکشی بیره این که پونسدیه ولش کن سد تومنی چیدی زنگ زدهی مثلا پیدا کنه بده دو صدقه من وزم خوب بهش صدقه میدم دروغ میگه کسی که تو فقر صدقه داد تو قناه هم صدقه میده اما کسی که فقیر بود و صدقه نداد میلیاردرم بشه صدقه نمیده. یادم یه مدتی شهرداری بعضی وقتا جملات قشنگی مینوسه با همه این خبط و اشتباهاتی که داره این آقایین فرهنگیشون با همه تعطیل بودنشون بعضی وقتا جملات قشنگی مینوسن ادم میگه چقدر قشنگی میگفتش که کمک کردن مثلا بخشش و اینها پول نمیخواد دل گنده میخواد دل میخواد پول نمیخواد الحمدلله و ما نداری نداری رزق میخوای برو صدقه بده مگه نگفتم اون کسی که فقیر بود خدمت پیغمبر یا رسول الله من فقیرم گفت برو صدقه بده آقا من میام فقیرم تو منو گرفتی گفت مگه تو پول نمیخوای گفت چرا گفت برو صدقه بده آقا دو دو تا چهار تای ما خرابه ما دو دوت تا چهار تا نداری ماها دو دو تامون پنج تاست پنج تا 23 تا اصلا کم تره اصلا ریاضیمون غلطه ریاضی اهل بید درسته ریاضی خدا درسته میگه آقا دو دو تا چهار تا پول میخوای صدقه بده من برات برمیگردونم من هفتاد برابر برات برمیگردونم خیلی راجم مینا صحبت کردیم من نمیخوام شر فقط داشتم دوره میکردم بر. حالا اونایی که نبودن اگه دوست داشتن فکر میکنم که آهی نبابی زحمت کشید و سایت کچه من خودم هم نشنیدم به دردم نمیخوره صحبت های من در بده چهار رومین مطلبی که از اینجا به بعد بستر جدید میشه چهار این مطلبی که موجب افزایش رزق شما میشه رزق ظاهر و رزق باطن چی آقا؟ وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در بهار می مباسات مباساط الاخف الله عزوجل توزید و فررز یا تزید و فررز می خوایی رزق زیاد بشه با برادر دینی مباساط داشته باش بهش کمک کن کمک مالی کمیش رزق زیاد میشه مثلا میگو من یه ملیون تو من دارم الان بدم به این که خودم گرفتار میشم که یا یه ملیون میخوام بهش بدم میگم خب قرونت بدم ببین بازار الان صدی هشت میگیره من صدی سه میگیرم مثل قدیم بعد دیدی توجیحاتی دارن برای این مسئله ربا و نزولی که الحمدلله تو بانک های ما الان داره موج میزنه میگه آقا بعضی از آقایون ها بعضی از متاسفانه هم لباس ما حضرت آج جوادی آممولی حرمم کرد باام های بان ها که بانکی نداشته باشم گفت هر کسی هم کهتون قسمت وام بانک کار میکنه او گفت حمه خیلی پیچیده شد ه در ما جپی گرفتن بانکای های ز کردن کار رو میگه نه من نه تو سه در زد. بعد خیلی از این آقای من شنیدم بعضی از این آقای اون مثلاش می داره میداره ماشلههی بعد تو نگاه کنی ای اوه هشتاد تایتولا لزمار میداره تو جیب بغلش. اگه حیبت علمایی داره بعد میاد میگه آقا اینکه ربانیست. آجاز چرا ربانی؟ آقا اون یه ملیون تومنی که شما پارسال دادی باهاش هاش میشد یه سکه خرید الان که نمیشه یه سکه خرید الان سکه شده یک و چهار سر. خب تعدل نداره بازار ما این اونه این اون سوده است. ما که نمیخوایم تو ربا بگیریم که خب اینجوری تو قرض هم بود همین کارو بکنیم دیگه من میخوام به داداشم پول بدم میگم سر سال به من سکه بده چه پیغمبر اینجوری گفته مگه پیغمبر زمان پیغمبر مگه اینجوری نبوده یغو طلب داری بهش شل بگیر بذار ب... نداری برو هر وقت داشتی بیار بده حالا الان ندارم ایراد نخگیر به... اون کسی که داش طلب داری میتونی بهش صبر صبر کن بهش مهلت بده رزقش زیاد میشه فکر کردی رزق تو اینه که صدیشه بگیر ازش نه به امام حسین بیچاره میشه فکر میکنه رزق داره معادله خدا با معادله ما فرق داره معادله خدای کف ترازوئه که یه دونه اسکناس میذاره توش تو یه ورش خب بعد 500 تا از این وزنه های سنگین برکت میذاره روش تو هرچی دلت میخواد پول بریز تو میکفه اگه اندازه این شد اون چیزی که خداوند متعال بهت میده برکته یه پولی گیرت میاد تو رای خدا نیست دیگه خدایی و نوزوله حالا حواست نیش این کارا را انجام نمیدی رزقت کمه چیکار میکنی؟ پنج ملیون هم درامت داره طرف مایی آقا میگه آقا اصلا به سر برج نرسیده من هشتم گره نهمه نمیرتونه بچه مریزه زنه نخ میزنه این میگه برو برا من نمیدونم طلا بخر بچه میگه غلط کردی من آیفون میخوام نمیدونم برا من باید اینو بخری اونو بخری بابای میگه من مگه چل تومنم در آمد داشته باشم نمیتونم شیکم یه ستارو سیر کنم ستام با اما موبایل خدا به اهلش برکت میده به زنت میگه بیا برای که میگه نه من کارش دارم نه دستب بچه موبایل نه با موبایل نمیخوام چیکارکن درس دارم حالا همین گوش معمولی هم باشه برای اینکه وقتی به من زنگ بزنی منو پیدا کنیم نمیره یخه با. با. با با بیچارش میکنن زن و بچهش برکت رفت حالا برو ما ده میلیون درمد داشت باش بیچاره میشه به خدا من دارم تو این رفقا دارم ما 500 هزار تومان درآمدشه 580 هزار تومانم اجاره خونه میده. بعدی وقتی بهش میگم کار میکنی؟ 80 هزار تومانم که تو زیر خط فقر میگه نمیدونم، سر ی ترم نمیدونم، چه چجوری دارم. میگه نمیدونم خودش هم نمیدونه. میگه که خونه هم میدیم، میریم، میار نمیدونم. خدا برکت میذاره. آقا نمیشه. راست میگه. اونی که میگه نمیشه راست میگه. آره تو دل اون نمیشه آخه خدا نداره که میگه نمیشه اعتماد به خدا نداره فکر میکنه خدا خودشه اون خب برنامه برای تو نمیشه تو کاره ایم. ولی خدا د... دنیا تو دستشه، امام زمان خبر داره تو جیب شما چقدر پوله است بعد میری به کی رو میزنی یعنی تو باور نداری امام زمان جیبت خبر داره اگه باور نداری اصلا امامتو نشناختی. حالا همین اهل بهت میگه آقا ما رزقتو زیاد میکنیم. آقا من چیکار کنم؟ مواسطل اخ. با برادر دینیت برابری داشته باش. میگه میخوام برم مثلا چلو کباب بخورم. ستا بچه ها میکنم. یه فلانی رو ببیشم پول نداره. خندیدن همه الحمدلله دست پیچشون قویه فلانی رو بپیشون پول نداره همین دیگه نیست آقا الان پول داره بگید بیان بگید پول داره مواسط و لخ نداره دیگه برد و رفیقه هم ببه بچهان رفیقمونه پول نداره ایراد نداره رفیقمونه آقا دونگ بذارید هر هرچی داره بذاره رفیقه برادر دینیته با هم هیئت میرید با هم مسجد میری بعد تازه باید حواست هم بهش باشه ها میخوایم بریم مثلا این چی چیه این پارک آبیه بیرونه تهران بشی چی میگن عادیه دکتا فکر کنم گرونه چند 25 25 گرونه دیگه میخوام دکتا ببیار پارس خب یه رفیق داریم میدونیم نداره میگه من نمیام کار دارم بچه ها برید ببینید واقعا کار داره یا به خاطر اینکه پول نداره میگه نمیان یا همار بگیرید نه انگار پول نداره داداش بیا بریم حالا مهمون منی آقا بیا مهمون منی چیکار کار داری تو بعد با بچه ها ببندید پشت پرده بذارید ببریدش برادر دینیتونه ها فردا قیامت شما وظیفه دارید نسبت به هم دیگه فکر نکن بگی آقا من چیکار دارم با میلاد من چیکار دارم بود کای منم چی با اینا چیکار دارم من کار خودمو میکنم این کار خودشونا حالا هر از با هم میریم دوری هم دوریم میزنیم نه همیشه این که با هم دست دادید دست بدید او یه زنه مثلا های قدیم دست بدید ما نمیگیم لات بازی در بیاد ولی خب بعضی مرام این لات های قدیم الان که دیگه لات نداریم الحمدلله ما مثلا لات‌های قدیم دست میداد دیگه تا آخرش دست میداد دیگه آقا من دیگه تا آخر پاتم با رفیقتون تا در جهنم برید ولی تو جهنم ندید رفاقت کن، داشتش تواف میکرد با امام صادق در محظر امام صادق ایام ایام شهادت حضرتم هست پداش بشن با امام صادق داشت تواف میکرد آقا شوخی نیست با امام داری. شونه به شونه ای امام تواف کنی با امام حرف بزنی واو چه نعمت عظیم. دیده ای صدا میکنه فلانی فلانی یکی از اونورا داشین صدا میکردینم گفت میگیریم بابا الان من برم طواف چون توافو تعطیل کنی باید اول شروع کنی دیگه از اول باید تواف کنی حضرت گفت من رو صدا نمیکنم گفت چرا آقا گچ نمینی گفت آقا در محضر شما توافه. گفت کن توافو. برو ببین برادر دینی چی داره بهت میگه برو کارت داره کورو کارت داره دو تومن تو جیبت پول هست بعد رفیقت میگه که داری یهزار تو همه هم بدهی میگه این آدم این پولو بر نمی من میدم این به اولشون پول به خود دادیم به گدای قبلی شوخی هم باش و دادیم به گدای ترمو شد چی آخه بهش بده؟ خدایا تو شما فرمودی یا امیر شما من به عشق شما میدم من این اینم که دوستش دارم به خاطر تو دوستش دارم پولرم دارم به خاطر تو بهش میدم برم نگردونه تو بده کار من تو گفتی بده من هم دادم تو بده کار منی بعد امام زیر دینه کسی نمیونه قصد نخوری انگشترم دو تا انگشت بچه‌ها میدونن من همیشه با انگشترم الحمدلله دو تا از این انگشترهای منو بلند کردن جایی خوش خوشبختن بردم فروختم فروختن 4 دستم چرخیده بود انگشتره یاره ورده بود مشهد بود به فروخته بود به یک فروخته بود به یکی فروخته بود به یکی فروخته بود به کلکسیون دار منم جایی بودم بالاخره ما مرتبط میشد به حضرت اهل بیت اونجا کردم یا باقیا الله من شب مهمون شما بودم منزل شما مال منو بردن. خب خدا رو شد. شما مدیون ما شدی. چقدر خوب امام زمان مهدی منو به خدا انگشتار چهار تا برگشت. او غلط نکن تو... او همه عالم مدیون ما مدیون تو بمونی. اهل بیت مدیون کسی نمیمونه تو به خاطر امیرالمومنین بده. بگو شما فرمودی منم میدم. شما هم وعده کردی رزق من رو زیاد کنید. زیاد نکردی مدیونی. بر نگردونه مدیونی. تو مدیونی. آقا ول کنید مردمو، با خدا معامله کنید. باید طرف حسابه دو زمان. هوای رفیقاتونو داشته باشید. تو جایی درسته سابه خدا خداوکیلی خداوکیلی شما ها اصلا گناه ازتون دوره بچه ها حواظتون باشه سند و سال های شما سه و سال خطرناکی ها دختره میادیه اشوهی میره تا هم کیف میکنی نیشه تو تا بناگوش با همیشه میبهب اگه اگه دختر خوشتون من اگه خوشت نیاد که مریضی اگه کسی بگه آقا من دختره رو دیدم خوشم نیامد، مثلا دخترم، اون مریضه طرف. مرد نیست اگه خوشت اومد، خوشت نیومد که مریضی، اما اگه خوشت اومد، سرتو بندوز پایین بگو خدایا به خاطر تو. اما اگه خوشت اومد رفتی دنبالش خاک بر سرت. صاف بهت میگن خیلی اردان فروختی خودتو. رفیق دوتا و دادن بهت که با این چشما بری مدجع اهله بری حرم امام رزا همچین که چشمت میافته به گنبد امام رزا گله گله بریزی انگار معشوق محشوق تو امام رزاست. نه این دختره عشقه میان به درد نمیخوره همه دختر و دختر خوبم داریم میال به وقتش خواص ازدواج کن رو کن کنات داره بر دختر خوب بگیر. یه ذره حواست به خودت باشه. اینو میخوام بهتون بگم این مقدمگه اوم تو اینجا با رفیقاتون جای خوب بری میخوای کمکم کن تو خوب نه که مثلا میخوای بریم چه میدونم؟ یه مجلس خدایی نکرده خدایی نکرده خدایی نکرده نستجی رو به لوگونا رفیق جل نداره بیاین 5000 تومنو بگی برو جل بدم مواسات الاخ هیچ چی همون 5000 تومنو هم که رفت مدیون امام زمانم امام زمانم مدیونت نمیشه دست رفت کلا کمک کنید برادراتونو رفیقاتونو کمک یه جای دیگه مواسات الاخ میدونی چیه همیشه پول نیست اونجایی که دست, دست رفیق تو بگیری بگی امشب بیا بریم هیت. بیایم نماز جماعت از اونو گفت اجقا تکبی رو گفت, آجاقا رو گفت بود و دیگه بابا باتون سیگاره رو بکشیم الان مییم بابا ول کنیمین لام از سو بیا یه دقیقه بریم نماز رو بخونی بر میگردیم ببینیم یه پاکس سیگار بکشیم. یه دقه باث من آقا بیا بریم نماز جماعت رو بخونیم دست رفیق تو بگیر برد و برو نماز جماعت. من شنیدم، تو شما که نیست، فکر میدونم، آلا نمیدونم تو آلا باید بچه های که نیستم. موقع نماز، باید میسنم بیرون نماز نمیرم. میدونی من به این آدم چی میگم؟ شما نداری ما، تو شما نداری ما. به این آدم میگم احمق. اسگل، شنگ، شنگل، هرچی تو میخوای بگی. میدونی چرا؟ چون نعمت الهی رو فروخت. میگه انقدر ثواب استیاده فرشتای الهی نمیتونن بنویسنش. خب دیوانه. واسه چی نشستی؟ خب پاشو برو. تو که دم مسجدی. چرا نماز تو نمیخونی؟ آج آقا خیلی آروم میخونه. مثلا آج آقا من حسلم نمیگیره. یوزاره بذون صد آروم بخونه که بخونم میخوام حالتو بگیرم با خودت دعوا کن میخوام حالتو بگیرم نمییرزه اصلا دو ساعت بشه به اون ثواب نمییرزه اگه الان به شما بگن که آقا بلند بیا بریم فلان مجلس فلان محفل قیمه میدن، قایمه میدم بودو جلو در وای میستی میید خب جلو درواعسیالا دو این سیگاره رو بکشم. اصلا دنیا رو ول میکنی بر و بریم ققیمه نه تموم میشه بیچاره میشین. این هم تمام میشه روکت تموم میشه بیچاره می شه. خاک بر سرت میشه. خدایی برای یه قیمه میدوی دوی قیمه هم خیلی گفتم ها. مثلا میگن آقای فند میشه توخم و مرغ میدن بازم میدوی. آقا کیک میدن. شربت دیدی میدن جلی در محشه بودو بودو میدون همه و شربت تموم شد شربت سرجم ست توم هم پولش ها خب درست کنه. اون وقت مثلا شربت بدن میری سر کوچه وایسی و هم جنگاه کن نویل نمی کنی آقلی ایراد نداره عقلت کار میکنه میگه برسم به شیکم هم دیگه پس چرا نمیری نماز چرا بعضی از این بچه موقع موقعی وای میسه بیرون؟ بس چی وای میستن؟ اینجا دارن نور پخش میکنن؟ اینجا, اینجا اون وقت با قیمه نیست اون وقت اینجا تی که خدا اگه بخواییم به دنیایی حساب کنیم نمیدونم دیگه مثلا تو بگو خوابیار بقید یارم نه تو اصلا که خفندترین غذا رو دارن اینجا میدن اما میره دم در وای میسه خدا وکیلی وای میسی اگه ببینیم چی چی... چرا نمیاد چون نمیبینه اینجا بی عبدالله داره رزق میده داره دونه دونه بهتون رزق میده حضرت زهرا دونه دونه داره دست میکشه به سر شما چشاتو واکن ببین چشاتو واکن ببین دست برادر دینی تو بگی ببر من نماز بگو یارم نماز شب شهادت امام صادق پاشوی بیا بریم یه جا برای قربت این فرزند زهر رو گریه کنیم. آه. بیا بریم یه جایی بشینیم گریه کنیم. دستشو رو برش برش دابه برحییت. این کارو رو این هم مباسطل اخه دیگه؟ داری به برادرت بالاخره با هم برابری میکنی تو داری میری یک جایی که یه رزق بسیار زیادی دارن بهت میدن میگی من نمیخوام تنها برم برادرمم میخوام با خودم ببرم رفیق همون میخوام با خودم ببرم این محروم از این رزق الهی نشه مواسط الاخ اون بر رزقتون رو زیاد میکنن دست, میگیری. دست تو میگیری دست رفیقتو میگیری میگه بیا بریم امشب هی عاد میاری بعد رزقتو میبینی چه عالی داری چقد منقلبی گوله گوله اینجوری نبودی قبلا امشب چرا انقد اشک داری امشب چرا دلت شکسته امشب چرا واسم فکر میکنی که سید الشهد تو قلبت نشسته بود چی اینکه امشب یه کاری کردی خدا رزقتو رزقت زیاد کرد مواسات یو هفته بعد یه رفیق زنی میزنه میگه که فلانی بله ما داریم این مشهد یه جا هم گرفتیم با تو فلانی نه این من بریم پولش هم داده آقا چرا نمیام نکرتم هسته مشهد مفت رزقه دیگه رزقه دیگه به خدا رزقه هم همین جوریه یه میگه باشید بریم قوم رفتید دیگه خیلیاتون رزقتون بود رفتتون تو رو برو هرم بی بی بایست دادی شب تو سبسینه زدید گریه کردید چرا؟ چون قالب شما ها یک شنبه که میشه به مثلا این به اون میگه که محمد بیا بریم حیعت آبود برو بریم انام شروع میشه رضا کجایی؟ آقا ما چقدر وقت داریم آی نوابی؟ ما نوابی؟ چقدر وقت داریم؟ ندیدم نصفه شد دیدم پنج دقه؟ نداره. یکی دیگه هم می تا حالا چهار تا گفتیم چهار تا از مسائلی که رزق شما رو زیاد میکنه. پنجمی پنجومی الامانه امانه یزید و فر رزق. آقا امیرال مومنی فهم بدن رد امانه امانت دار باش اگر رفیقت یه چی رفتی بهش بده برگردون امانت رفیقت رو آن کتابی که بهت دادن کتاب شیب کی لبون و شیب چطور؟ کتاب <تصفيق> شما اصلا خودت هم نمیشناتم چه برسه دیگه به کتاب پول پول دادی به من تو میدم ازش مثلا یه چیزی میگیره میبره پاراش میکنه آبگوش گوش میره دورش برمی داره رو جزوه بعد نخ میره می داره میاره برگردون امانت دار باشید رو فوق. حالا الحمدلله این زیاد موزل خاصی نیست از اون موزلهای نیستش که خیلی باب باشه خیلی کمه از اون رضایلیه که کمه این که طرف امانت دار نباشه تو ظاهرا تو باطن که تقریبا قالب مردم خیانت در امانت کردن القلب حرم الله. قلب حرم خداست خب قلبی که حرم خدا بود دختر همسایه رو توش نشوند. شد چی؟ خائن تو ملک خدا رو بخشیدی به یکی دیگه خیال ملک مال قلبت مال خداست بعد مثلا نمیدونم زن و بچه و ماشین و مطور و اینا رو گذاشت توش یا مطورم رو دوست دارم بابا این قلب خیانت نکنید تو امانت قلبتون رفقا دوست نداشته باشید همه چی رو. هر دید ارزش دوست داشتن نداره. و بابا, بابا قدر خودتو بدون. چرا خودتو مف می فروشید؟ چرا تا همچین یه مثل آشقانه برات میاد دست و دلتو گم میکنی فقط اسمس اومده ببخشی داریدن من اشتباهیم مثلا پسرم از تا داره سر کارش تا صبح خوابهای خوب میبینه <تصفيق> سر کارها چرا دلو نداده به خدا اگه دلو مثل یوسف نبی داده بود به خدا وقتی گناه میومد دنبالش باقه بسن من برای تو هم من دنیا بیادستم دنیا بیاد دیگه من برای تو هم دنیا به شکل یه زنی ظاهر شد خدمت امیر المومنی. علی منو عقد میکنی. و تو کی هستی؟ من دنیا. نه دنیا خانم ما دنیا. تمثل در شکل زنی داشت. گفت حالا چند تا شوار کردی؟ خیلی. گفت حالا پای کدوم نیشست چی؟ هیچ کدوم همه رو کردم زیر خاک. گفت برو من تو رو سه قد کرد. کسی رو که سه طلاقه کنی دیگه نمیتونی بگیریش حرومه امیر المومنی فهم من تو رو سه طلاقت کردم آقا مگه منو تو نمیخواییم بگیم منو تو شیعه ی علین حالا حالا دنیا رو سه طلاقه نکن حالا حالا حساب یه در ولش کن هرچیدی اردش دوست داشتن نداره قرآن بعضی بعضیا خداشون کی میشه الهه و هوا بعضیا خداشون هوای نفسشون میشه بعضیا خداشون چی میشه ماشینش میشه همش به فکر بعضیا خداشون زنه میشه چه میشه خونه میشه ویلاش میشه حساب بانکیش میشه بعد فردا قیامت بهش میگم من بک میگه هوایی ماشینه خونه من رب خونه. کنم اونجا دیگه اگه خالی ببندی؟ اینجا میتونیم خالی ببندیم باب خالی بستن بازه باب خالی بستن تا دم قبر بازه دم قبر بعد نمیتونی خالی ببندی دیگه راست میگی اونجا هرچی تو قلب دوست نداشته باشید همه چیر باشید دوست دارید یه ذره به خدا دل بده ببین چه اتفاقی برات میافته او یه ذره یه شعری میخونن توی ما رمزون و من میذاره میگه چند خوردی چرب و شیرین نسته چند روزی امتحان کن در سیام او این همه تو قضا خوردی چرب و چیدی و روش نوشابه و تو و فلان بابا اینقدر خوردی چی شد حالا بیا چند روز هم روزه بگیر ببین چی میشه بابا این همه دلدی به دنیا اینقدر با دنیا سر کار داشتی اینقدر چسبیدی به شهوات نفسانید اینقدر چسبیدی به مال دنیا چی شد چی ایرت اومده چند سال از عمرت گذشته کفه دست چی داری برای فردای قیامت به خدا اگه ابی نبود بیچاره بودی ما اگه فردا بیامه ابی عبدالله حالا اگر میدونیم نیست بیا بگو من پامو کشتم کنار این با ما نیست بیچاره میشیم چون هیچی نداری چی داریم الان ما در ظاهر شریعت هم گیر کردیم نامحرمو میبینه تا اونجایی که چشش کار میکنه نگاه میکنه دیگه مهد بشه یعنی الان دیگه باقا بگیم من دیگه, دیگه نامهرم رو نمی, بیرم. نمی بیرم. یه نقطه سیاهیه داره میره دیگه تموم شد انقدر ریز نگاه میکنه گریه داره میدونی چرا میخندی؟ چرا که هست؟ اگر الان میجه چیتی بود که من مثلا تو شما نبود اصلا تا حالا انجام نداده بودی ما اینا ها میگفتیم من میگفتم به نامهرم نگاه میکنم به نامهرم نگاه میکنن؟ اما الان میگید به نگاه میکن همه خوشحال میشن و تو رفق و چشماتون رو ارزم اگه به نامهرم نگاه نکنید اگه قلبتون رو سالم نگه دارید این چشم ها میتواند امام زمان رو ببیند هر که به دید آورتو نائل شود یک شب هلال مساقل شود یه بار ما زمان رو ببینی تموم شده رسیدی به خودت رسیدی دیگه میخوای ببینی که اوضاع نگاه قلب چجوریه من الان بهت یه شاغول میدم یه میزان بهت میدم بذارش تو کفه ترازو ببین اوضاع چجوریه بعد باید چند وقت حساب کنی مثلا سه چهار ماه هر افته مجالس رو حساب کن. بگو خب این افته من اصلا عشق داشتم برای ما یا نه؟ اگه عشق نداشتی بدون اوضع خرابه. ساده دارم بهتون میگم. اگه تو روزه گفت میخوای شیعه ما رو بشناسی؟ گفت بله آقا. گفت سه بار پیشش بگو از سلام علیکه یاب عبدالله. اگه گریه کرد اگه تلوی اسم عبی عبدالله نشکنه کار داره اگه اومدی دیدی گریت میگیره بدون قلب راد داره داری گناه میکنی حالا اومدی و گریه کردی هفته بعد بیا ببین چقدر گریه میکنی اگه بیشتر گریه کردی بدون داری یه حرکت های مثبتی میکنی اگه دیدی حالت بهتره بدون داری نه حواست به قلبت هست اما اگر دیدی نه هفته بعد اومدی اشکت کمتر شد بدون سوتی دادی اشک ها اشک تباکی هم خوبه ها بیایی تباکی کنیم مثلا چون میگه کسی که تباکی کنه تو دستگاه ما موسیم مثل کسی که گریه کرد بیا الکی گیریه کنی برای کسی که بقیه گریهشون در بیاد میگه میث گریه کنه اما من میخوام به زی بدم که اوضاع قلبت رو بسنجی ببین که عشق داری یا نه عشق عشق است که از سوی و سماه کنند عشق او وقتی همینجا برات میشه حرام عبی عبدالله شب روزو با حسین ابن علی اشخاصی میکنیم قسمت بشی شلن و همین رو این چش باید بره اونجا حرم ببین همچین که یه میید تو اونان که سری اولشونه یا سری اول رفتن بهتر میدونه اونایی که نرفتن حالا قسمت میشه خبر نداره داره کجا میره؟ مثلا توی خیابونی داره میره یهو یه پیچی رو میشه میه به گمبد غم بنی هاشه میره جلو ما تو مبوده ما تو مفهود میری سمت گنبت قمروانی هاشم اه اون برای نگاه بعدی یه عمر گدایی در خونه ما گنبت عبی عبدالله رو می‌بینی؟ این چشه ها برای اونجا این چشه ها رو ندادن به این اون نگاه کن این چشه ها رو دادن من و تو بریم اونجا همینجا هر همه ما حسین رو ببینیم ایام ایام شهادت آقا امام صادق میگن که در مقاتل نوشتن سه بار سه بار بیت امام صادق را آتش دادن راوی میگه رفتم منزل امام صادق دیدم که امام صادق زانو بغل کرده، بغز کرده آثار اشک بر چهره مبارک حویدا ارس عرض کردم یبن رسول الله چرا گریه میکنیم؟ ما خونه رو درست میکنیم، این آثار آتش سوزی رو رفت می اساس, اساس منزل رو مجدن تیه میکنیم. حضرت فرمود که فلانی من برای اینها گریه نمی که همچین که منزل من رو آتش زدن دیدم این زن و بچه از حجرهی به حجرهی دیگه دارم می یاد زن و بچه ارباب بی کفن ابی عبدالله افتادم، موقعی که این خیمه‌ها ها را آتش زده بودن این دخترها دامنهای آتش گرفته السلام علیکم یا عبابده سل التي هلت عليك مني سلام الله ما بغيت وبغي و لا جل الله اخر منی السلام على الحسن و علي ابن الحسن و لا صحب و الاصحاب حسین السلام رحمت الله و بیت زهرا سلام الله علیها